چهار سقراط در هفتاد سالگی با طوفانی شدید روبرو شد. سئاتنی، ملتوس شاعر، آناتوس سیاستمدار و لیکن سخنور به این نتیجه رسیدند که او فردی عجیب و شرور است. آنها ادعا کردند که سقراط از پرستش خدایان شهر سر باز زده. ساختار اجتماعی شهر را فاسد کرده و مردان جوان را علیه پدران خود شورانیده است آنها عقیده داشتند که ساکت کردن و شاید حتی کشتن سقرات کاری درست است شهر آتن برای تمیز درست از نادرست رویه های قضایی را به وجود آورده بود در طرف جنوبی میدان عمومی شهر دادگاه هلیاست قرار داشت ساختمانی بزرگ با نیمکت‌های چوبی برای هیئت منصفه در یک انتها و جایگاه دادستان و متهم در انتهای دیگر محاکمه ها با نطق دادستان شروع می شد و به دنبال آن متهم سخن می گفت سپس حیعت منصفه دویست تا دو هزار و پانصد نفری با برگه های یا بلند کردن دستها اعلام می کرد حق با کیست؟ این روش تعیین حق از باطل به کمک شمارش تعداد افراد طرفدار یک حکم در سراسر زندگی سیاسی و حقوقی آتن بکار دو یا سه بار در ماه تمام شهروندان مذکر یعنی رقمی حدود سی هزار نفر به اجتماعی در تپه پنیکس در جنوب غربی میدان عمومی شهر دعوت میشدند. تا با دست بلند کردن درباره مسائل مهم حکومتی تصمیم بگیرند برای شهر رأی اکثریت معادل حقیقت بود در روز محاکمه سقرات، 500 شهروند آتنی عضو منصفه بودند دادستان در آغاز سخن از ایشان خواست این نکته را در نظر بگیرند که فیلسوف مقابل آنها فردی فریبکار است. او گفت که سقرات درباره اسرار آسمان و زیر زمین می کند و منکر خدایان است و به فنون بلاغی فریبکارانه متوسل می شود تا استدلالهای زعیفتر را بر استدلالهای قویتر پیروز کند و تأثیر تباه کنندهی بر جوانان گذاشته و آنها را از طریق گفتگوهای خود فاسد کرده است سقرات کوشید به اتهامات پاسخ دهد او گفت که هرگز نظریه ای درباره آسمان ها نداشته و درباره اسرار زیر زمین کاوش نکرده منکر خدایان نبوده و به آنها به شدت عقیده دارد هرگز جوانان آتن را فاسد نکرده قضیه فقط از این قرار بوده که برخی مردان جوان که پدرانی ثروتمند و اوقات فراغت زیادی داشته‌اند از روش سوال و جواب او تقلید کرده و با نشان دادن اینکه افراد مهم چیزی نمیدانند، آنها را خشمگین کرده‌اند او گفت اگر هم کسی را فاسد کرده باشد کاملا غیر عمدی بوده زیرا فایده ای ندارد که کسی آمدانه معاشران خود را فاسد کند چون در معرض خطر همین اطرافیان فاسد قرار میگیرد. و اگر فقط به طور غیر عمد مردم را فاسد کرده باشد در این صورت رویه درست این است که او را به خطای خود آگاه و به راه راست هدایت کنند نه اینکه برای خطای غیر عمد محاکمش کنند سقرات اقرار کرد که زندگی منحصر به فردی داشته است من در سراسر زندگی به پول آسایش و مقام لشکری یا سیاسی و دیگر مناسب قدرت و همه چیزهایی که به دست آوردن آنها آرزوی بیشتر مردمان است اعتناع نکرده از پیوستن به انجمنها و احساب سیاسی که در شهرهای ما تشکیل شده خودداری کردم. با وجود این کار فلسفی او ناشی از اشتیاق صرف به بهبود زندگی آتنی ها بود. من خوشیدم یک که شما را ترغیب کنم تا بیش از منافع عملی به سعادت فکری و اخلاقی خود فکر کنید. چنین بود تعهد او به فلسفه. توضیح داد که نمیتواند از این فعالیت باز حتی اگر هیئت مانسفان را شرط تبرعش قرار دهد به شیوه مرسوم خود باید بگویم ای دوست بسیار خوبم تا یک آتنی هستی و به شهری تعلق داری که به خاطر حکمت و قدرتش بزرگترین و مشهورترین شهر جهان است آیا شرمسار نیستی که به تحصیل حد اکثر پول ممکن و نیز شهرت و اعتبار توجه می‌کنی و هیچ توجه یا فکری درباره حقیقت و فهم و کمال روح خود نمی‌کنی و اگر هر یک از شما در این امر تردید کند و اعتراف کند که به چنین چیزهایی اهمیت می‌دهد اجازه نمی‌دهم به راه خود برود و نمی نمی‌کنم بلکه مورد سوال و سنجش قرار می‌دهم و می‌آزمایم هر که را ببینم پیر و جوان بیگانه و همشهری چنین خواهم کرد اکنون نوبت هیئت منصفه پانصد نفری بود که تصمیم بگیرد پس از مشورتی مختصر دویست و بیست نفر سقرات را گناهکار نشناختند و دویست و هشتاد نفر او را مجرم شمردند فیلسوف با تعنه گفت فکر نمیکردم اختلاف میان آرای موافق و مخالف چنین کم باشد ولی اطمینانش را از دست نداد هیچ تردیدی یا وحشتی در دلش راه نیافت او عقیده به برنامه فلسفی را حفظ کرد که با رأی اکثریت 56 درصدی مخاطبانش نادرست اعلام شده بود. اگر نمیتوانیم توانیم چونان خیشتنداری و متانتی داشته باشیم، اگر تنها پس از شنیدن چند کلمه تند درباره شخصیت یا دستاوردهای من به گریه می افتیم، دلیل آن ممکن است این باشد که تأیید دیگران بخش مهمی از قابلیت ما برای اعتقاد به حقانیت خودمان را تشکیل می‌دهد ما احساس می‌کنیم که حق داریم عدم محبوبیت را نه فقط به خاطر دلایل عملی و به دلیل پیشرفت یا بقا بلکه مهمتر از آن به این دلیل جدی بگیریم که مورد تمسخر قرار گرفتن نشانه روشنی از گمراهی ماست البته سقرات میپذیرفت که گاهی اوقات در اشتباه هستیم و باید به دیدگاه های خود شک کنیم. ولی نکته مهمی را اضافه میکرد تا ارتباط درک ما از حقیقت با عدم محبوبیت را اصلاح کند. اشتباهات فکری و نادرستی شیوه زندگی ما را در هیچ موردی و به هیچ طریقی هرگز نمیتوان صرفاً با این واقعیت اثبات کرد که با مخالفت روبرو شده ایم. آنچه باید نگرانمان کند تعداد مخالفان ما نیست بلکه خوب بودن دلایل آنها برای این کار است پس ما باید به جای توجه به عدم محبوبیت به طب اینها و دلایل عدم محبوبیت توجه کنیم اینکه بشنویم تعداد زیادی از افراد جامعه ما را دچار اشتباه می‌دانند ممکن است هراسناک باشد ولی پیش از ترک موضع خود باید به روش آنها برای دستیابی به این نتایج توجه کنیم. درستی روش تفکران هاست که باید اهمیتی را که به عدم تایید آنها می دهیم تعین کنند. به نظر می رسد ما مبتلا به گرایش مخالف هستیم. به همه گوش می کنیم و از هر کلمه نامهربانانه و از هر حرف نیشداری ناراحت می شویم. ما نمی توانیم اساسی ترین و تسلی بخش ترین سؤال را از خود بپرسیم. این انتقاد و نکوهش شرارتبار بر چه مبنای انجام شده است؟ ما دو امر را به یک جدی می انگاریم. مخالفت های منتقدی که با دقت و صداقت اندیشیده و مخالفت های منتقدی که بر اساس مردم ستیزی و حسادت عمل کرده است. باید وقت صرف کنیم تا علت انتقاد را بیابیم. همانطور که سقرات می گفت، بنیان تفکر هر قدر هم که با دقت تغییر چهره دهد، ممکن است به شدت آشفته باشند. ممکن است منتقدان ما ناشیانه و کورمال کرمال به دنبال نتایج گشته باشند. ممکن است آنها از روی هوس و تعصب عمل کرده و از جایگاه و مقام خود برای پوشاندن نقایست استدلال خود استفاده کرده باشند. ممکن است آنها افکار خود را مثل کوزه گران شاد و شنگول شکل داده باشند. متاسفانه برخلاف کوزه گری در ابتدا بسیار سخت است که ثمره تفکر خوب را از نوع بد آن تمیز دهیم. ولی تشخیص کوزه های ساخته شده به دست استادکار شاد و شنگول و همکار جدی او دشوار نیست. تشخیص تعریف بهتر دشوارتر است. کسی که در صفوف بیستد و با دشمن بجنگد بجنگت است. یا شجاعت پایداری آگاهانه است فکر نادرستی که مرجع مختدری بیان می کند هرچند بدون شواهد مربوط به چگونگی دستیابی به آن ممکن است تا مدتی اهمیتی برابر با فکری درست داشته باشد ولی وقتی صرفاً بر نتایج دیگران تمرکز میکنیم نابجا و بیمورد به آنها احترام می به همین دلیل سقرات به ما اصرار میکرد که به منطق مورد استفاده برای حصول آن نتایج فکر کنیم. در این صورت حتی اگر نتوانیم از پیامدهای مخالفت فرار کنیم حداقل از احساس ناتوان کنندهی در اشتباه بودن خود خلاص میشویم. اولین بار سقرات این عقیده را طی گفتگویی با پولوس بیان کرد. پولوس استاد مشهور فن سخنوری بود که از سیسیل به آتن رفته بود. او دیدگاه های سیاسی حراسناکی داشت و مشتاقانه مایل بود که سقرات را به حقانیت آنها متقاعد سازد او می هیچ چیزی به اندازه مستبد بودن انسان را مسرور و خوشبخت نمی کند. زیرا استبداد سبب می شود فرد مستبد هر طور به عمل کند دشمنان را به زندان بیاندازد انوال آنها را توقیف و خودشان را اعدام کند سقرات با ادب به سخنان او گوش داد سپس با مجموعه ای از استدلال های منطقی شروع به پاسخ دادن کرد و به دنبال آن بود که نشان دهد خوشبختی در انجام دادن کار نیک نهفته است ولی پولوس پای خود را در یک کفش کرد و با اشاره به اینکه فرمان روایان مستبد اغلب مورد ستایش عده زیادی بوده بر موضع خود پافشاری کرد او آرخلاوس پادشاه مقدونیه را نام برد که امو و پسرموی خود و یک کودک هفت ساله را که وارث قانونی تاج و تخت بود به قدر رسانید. و با وجود این همچنان از حمایت انبوه مردم آتن مند بود. بنابرای نتیجه گیری پولوس، تعداد طرفداران آرخلاوس نشان میداد که نظریش در باری استبداد درست است. سقرات مودبان اقرار کرد که یافتن طرفداران آرخلاوس بسیار آسان و یافتن طرفداران این دیدگاه که کار نیک به خوشبختی می انجامد دشوارتر است. سقرات گفت: «میدانم که بیشتر مردمان سخن تو را خواهند پذیرفت و اگر بخواهی کسانی را برانگیزی که به گناهکاری من گواهی دهند انبوهی از آتنیان و بیگانگان به یاری تو خواهند شدافت. تو از یاری یکیاس پسر نیکراتوس و برادران او که آن سپایه های مخصوص قربانی را به پرستشگاه دیونوسوس وقف کرده اند و آریستوکراتس پسر اسکلیاس که هدیه گرانبها به پرستشگاه آپولون فرستاده بهرمن خواهی بود باز اگر بخواهی تمام خانواده پریکلس یا هر خانواده بزرگی که اختیار کنی به درستی سخنان تو گواهی داد ولی آنچه سقراط با شور و حرارت انکار کرد این بود که این حمایت گسترده از استدلال پولوس بتواند به طریقی صحت این استدلال را اثبات کند آیا گمان می‌کنیم مانند کسانی که در دادگاه ها به یاری سخنوری بر حریف خود پیروز می‌گردند می‌توانید مرا هم به نیروی سخن محکوم کنی در دادگاه کسی که گروهی از معارف شهر را به درستی ادعای خود گواه آورد در حالی که طرف مقابل تنها یک گواه دارد یا هیچ گواه ندارد، در دعوی پیروز می کردند. ولی آنجا که مقصود از گفتگو روشن ساختن حقیقت است گواه سودی ندارد. زیرا ممکن است شنوندگان فریب سخنان نادرست گواهان را بخورند و گفته های آنان را درست پندارند. آبرومندی واقعی نه از رأی و اراده اکثریت بلکه از استدلال درست حاصل می شود. وقتی گلدان میسازیم، باید به توصیه افرادی گوش کنیم که میدانند چگونه لعاب را در 800 درجه سانتیگراد به مگنتیت تبدیل کنند. وقتی کشتی می‌سازیم، اظهار نظر کسانی که کشتی جنگی میسازند، باید دغدغه ما شود. و وقتی به مسائل اخلاقی میپردازیم، چگونه خوشبخت و شجاع و عادل و خوب باشیم، نباید مرعوب تفکر نادرست شویم. حتی اگر از دهان استادان سخنوری سلشگرهای قدرتمند و اشرافیان خوشلباس اهل تصادی خارج شود. این عقیده نخبهگرایانه گرایانه به نظر می رسید و همینطور هم بود. حرفهای هر کسی ارزش شنیدن ندارد. با وجود این نخبه گرایی سغرات هیچ نشانی از تکبر یا تعصب نداشت. هرچند میان دیدگاه‌هایی که میشنید تمایز قائل میشد، ولی این تمایز و تبعیض مبتنی بر طبقه یا پول مخاطبان و پیشینه نظامی یا ملیت آنها نبود بلکه مبتنی بر عقل بود که به تاکید او برای همگان قبه قابل دسترس است برای پیروی از نمونه سقراطی باید در هنگام رویارویی با انتقاد مثل ورزشکارانی رفتار کنیم که برای های المپیک تمرین میکنند. در کتاب نگاهی به درون یک شهر یونان باستان بیاندازید، اطلاعاتی درباره ورزش آمده بود. تصور کنید ورزشکار هستیم. مربی ما گفته که برای تقویت عضلای ساق پا به منظور مسابقه پرتاب نیزه تمرینی انجام دهیم. این تمرین ما را ملزم می‌کند روی یک پا بایستیم و وزنه ها را برداریم. این کار به نظر غریبه ها عجیب است. آنها ما را مسخره و قرلون می‌کنند که داریم شانس موفقیت خود را از دست می‌دهیم. در حمام به طور تصادفی صدای مردی را می‌شنویم که به دیگری قرولون می‌کند که ما بیشتر به نمایش های ساق پای خود علاقه داریم تا کمک به شهر برای پیروزی در بازی ها. این نظر ظالمان است، ولی اگر به گفتگوی سقراط با دوستش کلیتان گوش کنیم، هیچ دلیلی برای ترسیدن نخواهیم داشت. سقراط می‌گوید کسی که ورزش میکند و آرزو دارد که تنش نیک پرورده شود آیا باید پایبند ستایش و نکوهش توده مردم باشد یا تنها به عقیده پزشک و استاد ورزش اعتناع کند کریتون میگوید باید تنها عقیده اینان را محترم شمارد سقراط میگوید پس باید تنها از ستایش یک تن خوشنود شود و از نکوهش او به هراسد؟ کریتون میگوید بدیهی است می میگوید بنابراین در خوردن و آشامیدن و تمرین باید تنها از سخن استاد و کسی که در فن ورزش صاحب نظر است پیروی کند و آن را برتر از سخن دیگران بشمارد ارزش انتقاد بستگی دارد به فرایندها و رویه های فکری منتقدان نه تعداد یا مقام آنان آیا فکر نمی کنی باید به عقیده توده مردم بی باشیم؟ و تنها عقیده کسی را محترم بداریم که در آن امور صاحب نظر است بنابراین نباید در این اندیشه باشیم که توده مردم درباره ما چه خواهند گفت بلکه باید ببینیم آن یک تن که نیک و بد و عدل و ظلم را میشناسد چگونه داوری خواهد کرد اعضای هیئت منصفه که روی نیمکت های دادگاه هلیاست نشسته بودند صاحب نظر نبودند آنها شامل شماری غیر از كهن سالان و مجروحان جنگی بودند که به کار حیط منصفه و قضاوت به چشم وسیله آسانی برای کسب درآمد بیشتر نگاه می کردند. حقوق آنها سه عبول در روز بود، یعنی کمتر از دست موزه کارگر یدی، ولی اگر شست و سه ساله بودید و در خانه حوصلهتان اتان سر میرفت این مبلغ مفید بود. تنها معیارهای لازم کسب صلاحیت عبارت بودند از شهروندی، فکر سالم و بدهکار نبودند. گرچه سلامت روان با معیارهای سقراتی سنجیده نمیشد و بیشتر به معنای توانایی راه رفتن در طول خط مستقیم یا آوردن نام کسی در هنگام لزوم بود. اعضای هیئت منصفه در طول محاکمه ها به خواب میرفتند. به ندرت تجربه احکام و قوانین مشابه یا حضور در موارد قضایی مشابهی را داشتند و درباره چگونگی صدور و انشای حکم به هیچ وجه هدایت و راهنمایی نمیشدند. اعضای هیئت منصفه سقراط تعصبات شدیدی داشتند. آنها متأثر از کاریکاتور سقراط بودند که آریستوفان ارائه کرده بود و احساس میکردند این فیلسوف در مصائبی که شهر زمانی نیرومند آتن را در آخر قرن مبتلا ساخته، نقشی داشته است. جنگ پلوپونزی با فاجعه تمام شده بود. اعتلافی اسپارتی ایرانی آتن را به زانو درآورده بود. شهر محاصره ناوگانش نابود و امپراتوریش تجزیه شده بود تا اون و بیماری های محلک در نواهی فقیرتر شایع شده بود و مردم سالاری به وسیله نظام ای که در اعدام هزار شهر است داشت سرکوب شده بود به نظر دشمنان سقرات این چیزی بیش از تقارنی زمانی بود که بسیاری از جباران و مستبدان دوره ای را با سقرات گذرانده بودند کریتیاس و خارمیدس. درباره مسائل اخلاقی با سقرات بحث کرده بودند و به نظر می تنها نتیجه ای که از این گفتگو به دست آورده بودند شهوت آدم کاشی بود چه چیزی ممکن بود دلیل محرومیت چشمگیر آتن از لطف الهی بوده باشد؟ چرا بزرگترین شهر دنیای هلنی که هفتاد و پنج سال قبل ایرانی ها را در خشکی در پلاته و در دریا در میکاله شکست داده بود مجبور به تحمل شده متوالی بود؟ مرد سیاه جامعی که در خیابانها پرسه میزد و امور بدیهی را زیر سؤال می‌برد، علتی کاملا ناقص ولی حی و حاضر به نظر می‌رسید. سقراط دریافت که هیچ بختی ندارد. او حتی وقت نداشت حقانیت خود را ثابت کند. متهمان فقط چند دقیقه وقت داشتند تا هیئت منصفه را مخاطب قرار دهند. یعنی تا وقتی که آب در ساعت دادگاه از کوزه‌ای به کوزه دیگر برآمد. سوگند می‌خورم که هیچگاه خواسته و دانسته به کسی اهانت روان نداشتم. البته چون وقت کم است، نمی‌توانم درستی سخن خود را بر شما ثابت کنم. اگر قانونی مانند قوانین کشورهای دیگر داشتید که شما را بران آن می‌داشت، تا درباره مرگ و زندگی در یک روز تصمیم نگیرید، بلکه چندین روز صرف این کار بکنید، می‌توانستم شما را قانع سازم. ولی در زمانی به این کوتاهی ممکن نیست کسی به خود را از اتهامی به این سنگینی پاک کند. دادگاه آتنی جلسهی برای کشف حقیقت نبود. این دادگاه رویارویی روی سریع با گروهی از كهنسالان و معلولان بود که عقاید خود را تابعه بررسی اقلانی و مستدل نمیکردند و فقط منتظر بودند آب از ای به کوزه دیگر برند. حفظ این عقیده دشوار و نیازمند قدرتی بوده که طی سالها گفتگو با مردم عادی آتن به دست آمده بود. قدرت جدی نگرفتن دیدگاه های دیگران در برخی شرایط. سقرات خود رعی نبود و از روی مردم به این دیدگاه ها بی کرد زیرا مردم گریزی ناقض باور او به وجود قوه عقل در تمام انسان بود. در بیشتر عمر خود سپیده دمان مشغول صحبت اتنیها بود میدانست دانست فکرانها چگونه کار می و دیده بود که متاسفانه قالباً فکرانها کار نمی کند. گرچه امیدوار بود روزی این افکار به کار افتد. او دیده بود آتنی ها تمایل دارند از روی هوس موزه گیری کنند و بدون زیر سآل بردن باورهای مقبول از آنها پیروی کنند. توجه او به این امر در لحظه رویارویی با بیشترین مخالفت نشانه تکبر او نبود. او مرد عاقلی بود. که اعتقادات شخصی داشت و میفهمید دشمنانش درست فکر نمیکنند گرچه اصلا ادعا نمیکرد تفکرات خودش بدون استثنا درست هستند مخالفت آاطنی ها می او را بکشد ولی نمی سبب شود که او در اشتباه باشد البته سقراط می از فرلسفش براعت جوید و جانش را نجات دهد حتی پس از اینکه مجرم شناخته شد میتوانست از مجازات مرگ بگریزد. ولی با سرسختی این فرصت را از دست داد. ما نباید برای کسب ره نمود به منظور فرار از مجازات مرگ به سغرات روی آوریم. ما باید او را مسئله اعلای چگونگی حفظ اعتماد به موضع هوشمندانه‌ای بدانیم که با مخالفتی غیر منطقی روبرو شده است. سخنرانی سغرات به اوجه فی خود رسید. اگر مرا از میان بردارید به آسانی نخواهید توانست کسی را پیدا کنید که مانند من از جانب خدا به یاری شهر شما فرستاده شده باشد همچنان که اگر اسبی بزرگ و اسیل به سبب فربهی به تناسایی گراید به تازیانه و مهمیز نیاز پیدا می شود پس سخن مرا بپذیرید و مرا به حال خود گذارید ولی گمان می کنم، از سخنان من خواهید رنجید و چون کسی که از خواب خوش بیدارش کرده باشند برا شفته خواهید شد و مطابق آرزوی آنوتوس بی پروا مرا خواهید کشت و دوباره به خواب سنگین فرو خواهید رفت او اشتباه نمیکرد. وقتی رئیس دادگاه خواستار رعی مجدد و نهایی شد سی و عضو حیعت منصفه به مرگ فیلسوف رأی دادند اعضای حیعت منصفه به خانه رفتند مرد محکوم را به زندان برد